عن زبيد عن مرة عن عبد الله رضي الله عنه قال إن الله تعالى قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم وإن الله تعالى يعطي المال من أحب ومن لا يحب ولا يعطي الإيمان إلا من يحب فمن ظن بالمال أن ينفقه وخاف العدو أن يجاهده وهاب الليل أن يكابده فليكثر من قول لا إله إلا الله وسبحان الله والحمد لله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المصلين وآله وصحبه أجمعين أما بعد ديوس نهمين حديث أز أحاديث صحيح أدا مفرد حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كيميويات إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم أخلاق روزية هم ترك نون الشب منام روزية و این الله تعالی یعطی المال من احب و من لا یحب الله مال دنیا را برای کسی که دوست داشته باشه و دوست نداشته باشه میده این سخنان عبدالله بن مسعود تایید بر اون اعتقاد اهل سنت در فرق بین تقدیر کونی و تقدیر شرعی نز اهل سنت مقدرات کونی اون تقدیراتی هست که پنجاه سال قبل از آفرینش قلم نوشته و اون چیزی که نوشته میشه مقدر کرده که شما در این زمان باشید، در اینجا باشید و الان اینجا بشینید. مقدر کرده. کونن، الله نوشته بود و میدونسته. این که الان شما بیایید اینجا با خیار خودتون اومدید. تا بین مشیت سابق الهی و بین اراده شما الان نیست. در تقدیرات کونی لازمش این نیست که الله اون چیزی که خواسته بشه دوست داشته باشه. مثل خلقت ابلیس. نزه معتظله مقدرات یک نمونند. اون چیزی که الله میخواد با دوست داشته باشه. شون میگن الله غیر از اسلح چیزی دیگری انجام نمیده. چون الله ظل بر خودش حرام کرده هر فعلی از خودمان خوبه. و یه آخر هر چیزی الله مقدر کرده دلالت بر خوب بودنش و پسندیده بودنش نیست. زن الله بغضش داره. کونن مقدر کرده. ولی که شرعا از ما خواسته انجام ندیم. تو دست خودته که انجامش ندی و این انحراف با اراده خودت پیشمیات فلما زاغ و ازاغ الله قلوبه ها زیغ پیش میاد. ما یکی در مسئله قضا و قدر با این ها مشکل داریم توی قضیه تقدیر کونی و تقدیر شرعی و یکی در مسئله هدایت هدایت ها در قرآن یک نمونه و یک نوع نیست جایی هدایت توفیقه جایی هدایت ارشاده اینک لتهدی الى صراط مستقیم ای محمد تو هدایت میدی صراط مستقيم. این ارشاد یا توفیق؟ ارشاد. ارشاد می‌کنی. جایی دیگه در قرآن میگه انک لا تهدی من احببت. کسی که دوست داشته باشی هدایت نمی‌بینی. اونجا میگه تو هدایت می‌بینی. اینجا که تو هدایت نمی‌بینی. چه نوع هدایتی دست رسول الله علیه و آله نیست؟ ارشاد نمی‌بینی یعنی؟ یا توفیق. توفیق. توفیق هدایت دست محمد مصطفی صلی الله علیه و آله نیست. توفیق دست کیه؟ الله. الله که کسی که دوست داشته باشه توفیق میده. دوستش شش رسول الله صلی علیه و آله مؤمن بشه، مسلمان بشه. شد؟ نشد. أن كسي مؤمن مشى بصل مم مشى، كما شمل رحمت الله ومحبة الله وقع بشه، هركسي هداة نمشي، إن روزية، بزوك ترين روزية، وترهمن عبد الله بن مسروق رضي الله عنه ولا يعطي الإيمان إلا من يحب الله، يمر بكسي ناميد المقال وكسي كدوسش تشتبوش، الله توفيقة إندا توفيقة إنداك دار إنجيل رسول الله صلى الله عليه وسلم در مقابل این توفیق باش گذار و سفاظ الله بشید الله شما را انتخاب نمود به شنیدن سخنان مشرفترین خلقش از مخلوقات این توفیق میخواد این اراده چیه؟ اراده شرعی که از شما خاصه بود و شما عمل کردید شرعا از شما خاصه بود و شما خاصه در قرآن که علم را بیاموزید شهد الله انه لا اله الا هو الملائکه و العلم که اهل علم بشید آیاد در بحث به علم زيادة فعلم أنه لا إله إلا الله فعلم تكتب في من أسباب إنما يخشى الله من عباده العلماء الله مي خد من شماس علم بشيماس إيش بترسم ينا هل يسب الذين يعلمون والذين لا يعلمون هناك هناك نزل الله محبوبا مسلهما ما مجيب. هل يسب الذين يعلمون والذين لا يعلمون کسی که جاهله دنبال علم نیست حدیث رسول الله یاد نمیگیره دنبالش نیست مثل اون کسی که یاد میگیره و میره و میخواد راه و راه رسول الله صلی الله عليه وسلم باشه و پا به پا قدم بزوریم قدم های که رسول الله صلی الله و وسلم گذاشته مثل هم نه مثل هم نیست اینا رد بارکیه رد بر معتزل که اراده پیششون یک اراده هست هدایت پیششون یک هدایت هست پیش ما اراده ها متفاوتن هدایت ها متفاوته درستی آن باتوجه به با دلیل قرآن باد قرآن کنار هم دیگه بزاری تعارضی بین اینها نیست اینها نسوسه نصوص قرآن وقتی کنار هم دیگه گذاشته شد مشخص میشه که مقصد و مراد از این نسوس چی هست الله جل وعلا در قرآن میفرماید نحن قسمنا بينهم معیشتهم في الحياه الدنيا و رفعنا بعضا فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعض سخريه نحن قسمنا بينهم معیشتهم زندگی و رزق روزی و معنا و چز حسش چز اون ثروتش چز اون علمش الله هست که تقسیم میکنه بین بندگانش الله هست که تقسیم میکنه بین بندگانش همسر صالح همسایه خوب فرزند نیک این همه روزیه اینا همه روزیه که انسان باید از الله حسنی این روزی را بخواد مثلا در بحث اخلاق این حدیث رو این اثر را، که حکم مرفیع رو داره که امام بخاری میاره حکم مرفیع رو داره چون مسائلی نیست که اجتهادی باشه داره استنباط میکنه ازش برداشت میکنه همونطور که نان شب من گفتم روزیه دین و ایمان من هم روزیه اخلاق من هم روزیه و ما باید از الله جل و علا روزیه پاک و روزی خوب بتلبیم چه از فرزندان صالحه که الله از دعای مومنی چنین یاد میکنه که ربنا حبلنا من ازواجنا و ضروریتنا قررته اعیون نور چشمان ما باشن خوب فرزندان اینی که باشن که نور چشمان ما باشن یا در مورد اخلاق عا رسله ص الله عليه ووسله اللهم مک حسن خلقی حسن خلقی و الله همطور که خلقت من آفریدش منرا این چینی زیبا کردی اخلاق هم زیباکن خوبیه از الله خوبی اخلاق را بتلبی والله اخلاقم رو خوب کو درسته اون قسمت از حیث که جلو آینبیسی و این دعا بکنی ضعیفه بل اصل این حدیث اصل این دعا ثابته اصل این دعا ثابته چنانج آلبانی در اارواقلیل حیث شماره افرا چه تاصیح میکنه اصل حیث بح صحیه الله مال دنیا ها میبخشه به اون کسی که دوست داشته باشه و دوست نداشته باشه فرعون و هامان الله بهشون داد از مال دنیا یا نه داد مال نشانه خیرخواهی برای اون شخص نیست یعنی الله چون خیرخواهش بوده دوستش داشته مال بهش داده کلا نوم دوها اولی و ها من عطای ربک و ما کان عطاء ربک محذوره سوره اسراء 20 کلا نوم دوها و الله به مسلمانش و مؤمنش و کافرش میده شون مال الله يساعد بها لأنه لا يوجد حيث و تأييد بها لا يوجد حيث فمن ظن بالمال أن ينفقه فمن ظن أي فمن بخله بخله بالمال أن ينفقه فمن ظن أي فمن بخله انفاقش نکنه وخاف العدو أن يجاهده از دشمن ترسيت نرف به جهاد جهاد فرزهين جهاد وهاب الليل أن يكابده تحمل سختی هست نتونه سخت بکوشه شب بیدار بشه برای سه تا چیزی یاد میکنه مال را نگه داشت نداد انفاقش نکرد از فق ترسید مال را نگه داشت از دشمن ترسید نرفت به جنگ و جهاد سختی و مشقت تحجد را نتونست تحمل بکنه نیستاد به تحجد اگر شما از جمله این اشخاص شدید پس چینین بگید لا اله الا الله و سبحان الله والحمد لله و الله اکبر ما من ظن بالمال شما بخیل شدید نتونستید انفاق بکنید نتونستید جهاد برید نتونستید تهجد بخونید زیاد این ذکر را بگید لا اله الله سبحان الله والحمد لله والله اکبر سبحان الله از اذکاری که توصیه در فضل زیاد به شده این چهار ذکر الله اکبر و سبحان الله و لا اله الا الله والحمد لله الله شما در اذکار مختلف جایی میبینید. اول تصبیح و مد سبحان الله الحمدلله و لا اله الا الله الله اکبر. جایی اینجا دارید که از تحلیل شروع شده و جای اومده با تکبیر شروع شده. رسول الله صلی الله عليه و سلام هنگام وقتی که به تهجد می با تکبیر شروع می کردن. 10 بار می الله اکبر. الله اکبر. الله اکبر. الله اکبر 10 بار می بعد 10 بار می سبحان الله سبحان الله سبحان الله. بعد 10 بار می لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله بعد دهبور ميقول فتنة استغفر الله استغفر الله الحمد لله نسينيته إن ذكر بعد دهبور ميقول فتنة اللهم اغفر لي وهديني وارزقني اللهم اغفر لي وهديني وارزقني دهبور الحائدة دعاءس إصراره دعاءس بار الله ما بخش آخره قلنا هالشي تنابخش برا يشي بخط مهما قام إيش رسول الله صلى الله عليه وسلم در التهجد يسوده هموغه مؤخرته شو دار اللهم اغفر لي وهدني رسول الله هديه انك لا تهدي الا صراط المستقيم بيهدني غير از اون فاتحه كي بيجه اهدنا الصراط المستقيم رب اغفر لي وهدني وارزقني رزيم من بدي از اون رزيه اخلاق خوب از اون رزيه فرزندان خوب رزق مطلق من قيد اش ناكون تبره اله پاک بهم بده اون رزيه كي خودت برام ميپسندي حلال باشه بعد از اون رسول صلی الله علیه و آله 10 اللهم انی اعوذ بک من الضيق يوم الحساب اللهم انی من الضيق يوم الحساب بار الها از اون روز حساب و کتابت پناه بناب. روز حساب سخته بور الها روز حساب پناه میبرم بناب. ابتدا با تکبیر گفتن و تسبیح گفتن و استغفار شروع شد بار استغفار میکنه بعد از استغفار بازم الله اللهم مغفرلی بعد از اون بازم پناه میبره با الله از عذاب آخرتش بعد از اینکه عفت میخواد بخشش میخواد و اینها توصیه به من و شما اینکه خودمون ننازیم بون عبادتمون بون طاعتمون مغرور به خودمون نشیم روی بیاریم به طاعت روی بیاریم به عبادت از دل از خدا بخواهیم از ته دلمون فقط سر زبون نباشه رسول الله صلی الله علیه مقامش میترسه از عذاب روز قیامت از سختی عذاب از تنگنای روز حساب میترسه من تو از اسباب اولا باید به ترسیم من تو باید ترسیم رسول الله صلی الله علیه و آله قبل شما بخش با بعدش الله بخشیده من, الله من منو تو نمیوز که الله که اللهم ببخشه بخش الله عافس گناهانمون بکنه من تو محتاجم این مقدمه که رسول الله صلی الله علیه و قبل از این خاصی آخرش ابتدای دعاش میگفتن همین تسبیحات و تکبیرات قبلا مفصل شرح دادیم در اذکار نماز تکبیر الله اکبر الله بزرگتره از هر چیزی که وجود داره مخلوقات چیزی نیستن الله بزرگ خالقه ما مخلوق چیزی نیستن مخلوقات. سموات و مطیات و بیامینه کل لاصمون ها و زمین در کف دست خدا یک ذری پیش نیستن. الله اکبر بزرگه و باید در زندگیمون بزرگ باشه او را در هر چیزی بزرگ ببینیم حرفش و بزرگ بپنداریم بزرگ دستیراتش هم بزرگه از اون حجاب از اون نماز از اون روزه هر چیزی از خاصه اون. مأموراتی که بهمون امر کرده انجام بدیم بزرگه و اون منهیاتی که نهیمون کرده که انجامش ندیدین بزرگه چه خودش در قرآن ما را ازش برحذر بشموره یا دستور بده و چه رسول الله صلی اللہ وسلم وما وما نهاكم وما وما رسول الله علیه و سلام به ما بگه اما اتاکوم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا و ما اتاکوم الرسول فخذوه من چیزی که صل الله سلام بیتون امر میکنه انجامش بدید انجام بدید و اون چیزی که نهیتون میکنه انجام ندید الله اکبر ولا إله إلا الله يعني كذي لا إله إلا الله فعلم أنه لا إله إلا الله يعني إنك الله خالق ونا رزق ونا نه إنك معبد بري خودت اختيارنا كني انتخابنا كني معبد الله يكتا وشة الله يقانه وشة الله هس قبل يقانه ذلك الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطن. هر شيء غير از الله دعاء مش تلب مش باطله ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل هر شيء غير از الله صدا زده يدعون من دونه شيء باطله ان كسي دعاش مقبوله بدرگاه الهي كي خالصانه از الله بطلبه هلا لله الدين الخالص الله فقط دين خالص را از شما ميپذيره اما اون دینی که درش شریکی بیاد غیر از الله هر کسی بخواد باشه که تو صدا بزنی با الله در اون دعات چنانچه رسول الله سلام اللہ علیہ یاد میکن در حدیث قدسی از الله متعال من عمل عملا اشراک ما ایا غیری ترکتو و شرک هر کسی عملی و اومد کسی را با الله درش قاتی کرد شریکی کرد الله میگه من خودش و شرکش رها میکنم اون عمل مورد قبول به درگاه الهی نیست اعمال ما که برای الله انجام میدیم باید خالصانه باشه چه از اون دعا چه از اون نماز چه از اون روزه چه از اون صدقه پس اگر کسی نتونست به تحجد بیسه نتونست صدقه بده نتونست جهاد بره زیاد بگه لا اله الا الله و زیاد بگه سبحان الله الله تو پاکمون از زهی تو سبحانی اگر کوتاهی هست از ما مخلوقات، از منه اسم به گردن کسی نه اندازه اگر مصیبتی بلایی در این دنیا می بینه. اس خودش ببینه ناز الله تعالی الله شر برای بنداش نمیخواد. الله خیر خواه بندس الله خیر رو میخواد. گفته نماز بخون دوست داره تو هل نماز ببینه تو هستی که انتخاب میکنی نماز بخونی یا نخونی یونس علیه السلام وقتی که دار شکم نهنگ اسیر میشه چی میگه داش سبحانك الله املاء لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الضالين لا اله الا انت معبوده بحق جل سنيس برالله سبحانك تبارك من همان زال این تسبیحه معنای تسبیحه اقرار به درگاه الهی به تقصیرمون به کوتاهی تو پاک منزه برای الله تو پاک و از هر نوع ظلمی بدی والحمد لله زیاد بگید الحمد لله حمد ستایش الله در مقابل نعمت هایی که بهمون داده و در مقابل اون شری که از ما دور کرده حمد ستایش الله را بگید الله اون دست کسانی که الان مرتکب فاحش میشن، گناه و معصیت میشن، تو بازارن نگاه نامحرم میکنن، دزدی میکنن، ربا میخورن، الله ما از اون دسته اشخاص قرار نداد. این نیاز به شکر داره و بالاتر از اون نیاز به حمد داره. شکره وظیفته که شکرگزار الله باشی که الله تو را نجات داد. در مقابل این نعمت و بالاتر از اون شکر حمد ستایشه. اینکه الله را به ستایب اون صفات نیکش، خصال نیکش چه تو بهره من بشی از اون وصفی که الله تعالی بهش متصفن بهش وصف شده و چه بهرمن نشی الله رزاقه و تو را روزی میده در مقابل این تو را گذار باید باشی ولی در مقابل بزرگیش عزمتش کبریاش جبروتش تو باید حمد الله را به جا بیاری الله مستحق حمده مستحق حمده از باب اغراق یعنی تمامی خوبی ها در عالم به الله بر و اراده الهی خوب بوده و خیر بوده پیروزه الای بزرگ بوده حق حمد هر چی از الله رخ میده خیره ستایشه این ستودن الله جل و علا به اون اوصاف نیکش خاطر همی از دعای رسول الله صلی علیه و سلم در تهجد چی بود در دعای وجهت الخیر كله في یدیک و ليس خوبی ها به دست توست بار ها ولی شر رسیت تو نیست این حمد الله این به خوبی یاد کردن از الله با اون اسم ما صفاتش هر چیزی که از الله رخ داده و داره روخ میده خیره خیریته یعنی انسان مومن اگر فرعونم برش حاکم بشه اون مقدر تلخ را بر خودش خیر میبینه آیا موسی ناراض بود از این که او را برگزیده برای اینکه فرعون را دعوت بده؟ نه بلند میشه امر الله را سجابت میکنه و میره به دعوت دادن فرعون با وجود که میترسید چون کسی را کشته بود می ترسی این که فرعون حکومتش بکنه اذهبا فقول له قولا لينا برید و نرمی با فرعون صحبت بکنی دنیا میخواد بر سرت فرعون باشه یا بر سرت نمرود باشه فرقی نمی کنه دنیاست حقیق نزد الله جل و علا سلطان این دنیا در درگاه الهی چیزی نیست الله کن فیکون میکنه اون کسی که بخواد اون کسی که بخواد بلندش میکنه اون کسی که بخواد میاره ملک از آن الله مالکه فرمان رواست وقتی که انسان مالک خودش فرمان روای خودش رو الله بدونه دیگه ملک دنیاوی را چیزی نمیبینه حالا میخواد هر کسی رویش حکمی داشته باشه حتی هم ظلمی هم بکنه الله را عزیزتر از اون قویتر از اون میبینه پس اگر کسی عاجز موند از صدق دادن از تحجد خوندن و جهاد کرده تسبیح زیاد بگه تسبیح زیاد بگه بگه لا اله الا الله. بگه سبحان الله الحمد الحمدلله بگه الله اکبر این کلمات رو کم نگیرید جای وقتی فراغتی براتون پیش اومد این ذکر زیاد بگید عدد براتون مشخص نشده که ست بار بگید دویس بار بگید اون قدر که میتونید وقتی فارغ شدید این ذکر را بر زبان خودتون جاری بسازید قال المؤلف رحمه الله باب سخاوت النفس حدثنا یحیبن بكير قال حدثنا لیث عن ابن عجل عن أبي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الغنا عن كثره العرض ولكن الغنا غنى النفس سادو بيستمین باب باب سخاوت النفس اما بخاری رحمه الله انجام چنین عنوان میکنه سخاوت مندی نفس نفست غني باشه سخی باشه نفست سخاوت من دو غني باشه سخاوت من دی پر بپورنس سخاوت مندی به جیب پر نیست سروت مندی به جیب پر نیست به چیه پس حدیث شماره 210 حدیث ابو حریر رضی الله عنه و الله له و امه عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال ليس الغنه عن كثره العرض ولكن الغنا غنا نفس ليس الغنه غنی بودن بینیاز بودن از این که مال زیاد داشته باشی ثروت زیاد داشته باشی نیست گله از گسفند و شطور و فرزند و عبرات بین نیست ثروت این نیست ولكن غنا ثروت و بینیازی بینیازی نفسه غنا النفس غنا نفس اینه که تو راضی باشی به اون قسمتت اون چیزی که الله روزید کرده اون چیزی که الله بهت داده تو در مقابله اون قانع باشی یک زن چرا میره ابروشو برمیداره داره قانع نیست به روزیش به شکلش چرا میره بینیشو درست میکنه چون راضی نیست چرا آرایش میکنه چون خودشو ناقص بینه. عیب می بینه حتی مردم هم میطور و از مردمان متاسفم هستن آلوده شدن به تشبه به زنان ابروشون بهمیدارن عدم رضایت به اون خلقت اون چیزی که الله ماها رو آراسته کرده با اون و از مرد ریششون برمیدارن الله دوست داره شما رو ریشدار ببینه یا نه دوست داره نه دوست نداره دوست داره محبت ریشو داره از کجا میدونید؟ اینکه رسول الله الله سلم ریشاش بلند بود. و این که رسول الله صلی الله غیر از این که خودش ریشاشو بلند کرده بود توصیه کرده بود که ما هم ریشمون بلند بشه بلندش بکنی اعف ولها دستور داده به اعفا و بلند کردن ریش تو راضی به این خلقتی و راستگی که الله برای تو انتخاب کرده تو نخواست خاص الله گناه بشی اگر دوست که تو ریش نداشته باشی تو رو زن خلقت میکرد تو رو مرد خلقت کرد ناراضی که مرد تو رو خلقت کرده آفریده میخوای گناه بشی یعنی تصور سخت نه این رضایت به قسمت این قسمت جایی حسیه جایی معنویه جای حسیه جای معنویه حس پول ثروت جیبه راضی به اون قسمتش ناراحت نمیشه ماشین داشته باشه نداشته باشه موتور داشته باشه نداشته باشه خونه داشته باشه نداشته باشه قسمتا میگم تلاش کردن والله بهم نداد کشش میشه قایقش غرق بشه میگه الله حاسه غرق بشه راضی به قسمتش هر مصیبتی بهش بیاد راضی میگه مال خدا الله است مثل مسالم و ابو تلحه شب میاد شوهرش بخونه بچه خوابیده روش پتو انداخته لواف انداخته میگه بچه سر صدر صداش نیست خوابه منظورش این که مرده سو بولم میشه که بچه پیداش زنش بهش میگه میگه که اگر همسایه امانت بیاره بعد بیاد دنبال امانتش بهش میگه نمی دی میگه بله بچه که هم مرده امانت الله بود دست من و تو امانتش رو برداشت ابو تلحنه راحت مشی رسول الله صلی اللہ علیه و میگه یا رسول الله نگیت تنها به من نگفته بچه‌م شب مردا اومد خودشام زیوان ساخته برای که من باش همخوابی بکنم همخوابی هم باهاش کردم صبح بلند شدم غسلم بزنم میگه مرده ناراحت هاشکین ودا نازل رسول الله صلی الله علیه و سلم. رسول الله دلداریش میگه میگه از کجا که ما به دل اونها هم الله بهشون میده نه تا از هاش حافظ قرآن میشن تو نمیدونی مصلحت خودت قسمت خودت روزی خودت نمیدونی الله میدونه الله از غیب با خبر مطلع میدونه چه مصلحتت است چه نیست جای اون قسمت معناس جای اون قسمت معناس از هوش از زکات چرا من مخم نمیده چرا من حافظ قرآن نمیتونم بشم چرا من الله قسمتت نکرده شاید اگر بهت میداد شاید به خودت مغرور میشودی متکبر میشودی شاید خارجی می‌شودی چقدر از خوارج حافظ قرآنن و ماشات قرائت خودمو در مقابل قرائت اونها تحقیر بکرین ولی اونها مبتدیان گمراهان جهنمیان بوجه که قرآن می‌خونن ولی جهنمیان الله نخواست که ما از اون جمله جهنمیان باشیم این معناس الله ایمان را به هر کس نمیده الله ایمان را به کسی میده که دوست داشته باشه چه برداشتی میتونیم بکنیم از این حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم. ليس الغنا عن كثرة العرض ولكن الغنى عن النفس یعنی چی این دنبال دنیا نباشیم، دست دنیا بکشیم، بعد بشینیم، دنبال کاسیبی نباشیم، مال خوب نیست، مال خوبه. آدم باید دنبال مال باشه. ولی که نه به قیمت از عبادت و حد زدن، نه به قیمته اینکه شب و روزش هم غمش دنیا بکنه. راضی بشه به اون اندکش، اون که الله روزیش کرده. فکر نکنه که اگر نماز ظهر در مغازه رو ببنده روزیش کم میشه. نه، روزیش اون که الله نوشته بهش میرسونه. اصو حرکت خواسته. ولی که نه قیمت از دین زدن از زینت بزنی به خاطر اون لقمه نانت. مقصود این حدیث اینه شخصی هیچی نداره قانه شخصی میلیارد بره پول تو حساب بشه ولی خودشو بدبخت و بیچاره میبینه محتاج میبینه در حدیث دیگر داریم ما حدیث ابوذر رضی الله عن میبیات رسول الله صلی الله علیه وسلم چنین به ما فرمودن یا ابذر کثت المال هو الغنا. از باب سؤال بهش میگن. رسول الله صلی الله میگه آ مال زیادی را بینیازی میبینی ثروت میبینی کسی که مال زیادی داشته باشه قلتو نه ام رسول الله حقیقتش اینه دیگه کسی که پول زیاد داره مانده بینیازه قال افت ترى قله المال هو الفقر کسی که پول اند داره یعنی فقیره قلتو نعم يا رسول الله بله کسی که پول نداره فقیره قال انما الغنا غنا القلب والفقر فقر القلب غنا و بینیازی در قلب قلب انسان غنی باشه و فقر اینکه فقر در قلب انسان باشه خاطر این ما در حدیث دیگه‌ای داریم رسول الله الله علیه و سلم فرماند من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه، من كانت الآخرة همهه جعل الله غناه في قلبه، كاسك همش آخرات الله بيني أزير دار قلبش من جزاره، وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، والدنيا را الله بترافش ميارب، من كانت الدنيا همه، كاسك هم مغمش دنيا جعل الله فقره بين عينيه، الله فقرش جلوش شش مزارني همشي خدش فقير مبينه، در قلبش والفقر فقر القلب. خوشو محتاج مینی ابوجه که ثروت داره کسی که همش دنیا باشه و فرق علیه شمله یعنی الله امورش رو متشتت میکنه پراکنده میکنه دلش هزار جاست ولمیعته من الدنيا الا ما قدر له یعنی الله دنیا ربو نمیده مگر اون قدری که مقدرش کرده اون قدری که الله تقدیرش کرده کسی هم هموغمش دنیا باشه همیشه خودش رو فقیر میبینه و کسی مقامش آخرت باشه الله بی در قلبش میذاره همش همیشه خودش را بی می‌بینه و, و قال المؤلف رحمه الله حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد و سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال خدمت النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنين فما قال لي أفن قط وما قال لي لشيء لم أفعله ألا كنت فعلته ولا لشيء فعلته لما فعلته دي بيسو يوزهمين حديث حديث عن رضي الله عنك مجيات خدمت النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنين ده صار صلى الله عليه وسلم خدمات كأدم فما قال لي أفن قط وما قال لي لشيء لم أفعله ألا كنت فعلته ولا لشيء فعلته لما فعلته إن جاء أمام بخاري رحمه الله أدب رفتر صلى الله عليه وسلم بهموا يود واري ميكونا عزو السخوات من سخاوتمندی گفتیم فقط در مال بخشیدن نیست بلکه بخشیدن وقت در بخشیدن اخلاق رفتار در تعامل این سخا هست این سخی بودن و سخاوتمند بودن خب اینجا انس رضی الله عنه یاد میکنه میگه ده سال خدمتش کردم هیچ وقت به من اوفی نگفت اف. اف در اصل به چرک زیر ناخن گفته میشه فلا تقل لهم اوف اف, اف نگف به در مادرت یعنی کمترین چرک ناچیزی نارضایتی از دهنت بیرون نیاد که اونها رو برنجونی یا بجای گفتن کلمه اوف از تعفف میاد انسان وقتی که یک چیزی رو نمیپسنده میگه اوف یعنی هیچ وقت ابراز نکرد که از من ناراضی ناراحت میگه میشه ده سال خدمتش بکنی بعد یک بارم بروش نیاره که از دست مثلا رنجیده شده یا ناراحت شده این سخاوتمندی چیه نفس بخشیده دیگه ممکن نیست که اصلاً اشتباهی انجام نداده باشه میگه خب از حال روز خودش میدونه میگه با این وجود از سبیعت و خصاصیت انسانی که اشتباه بکنه و خلاصا گاهی بروش نیوورد حتی با کلمه عافت گفتن عفی هم به من نگفت. عفی هم به من نگفت. و ما قال لیلی شيء لم افعله در مقابل کاری که انجام ندادن ندادم کنت فعلت انجامش میدادی در مقابل کاری که انجام ندادم نمی گفتم چرا انجامش ندادی؟ یا باید انجامش میدادی ولاشه فعلته چیزی کاری که انجام داده بودملیما فعلته چرا انجام دادی؟ میگفت نکوهش نمیکرد کرد سرزنش نمی کرد این این معنا نیست که رسول الله صلی الله علیه و سلام در ادب تربیت کردن صحابه امر و نهیشو نمی و بهش چیزی نمی گفت نه بالاخره رسول الله صلی الله علیه و سلام رو معروف نهی منکر میکرد میگفت می که نماز بخونید روزه بگیرید و نکوهش میکرد کسی که کوتاهی بکنه در مقابل عبادت و طاعت مخصوص انس رضی الله عنه اینی که در بحث امور دنیوی هیچ وقت رسول الله او را نکوهش و سرزنش نمی نه در امور دینی، در امور دینی رضو الله علیه و سلم کسی گناهی مرتکب می شود و رکوزه می کند. چنانچه ما قبلا داشتیم، صحابه که جمع شده بودند می خندیدار رضو الله علیه و سلم رکوزه میکنه یادواریشون نعم قال المؤلى رحمه الله حدثنا أبو أبی قال حدثنا عبد الملك بن عمر قال حدثنا سحابه ابن عبد الرحمن ابن الأصم قال سمعت انس سبنا مالك رضی الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما وكان لا يأتيه احد الا وعده وانجز له ان كان عنده وقیمت الصلاه وجاءه اعرابي فأخذ بثوبه فقال إنما بقي من حاجته يسيره واخاف انساها فقام معه حتى فرغ من حاجته ثم اقبل فصلاه دوست دوازه حديث حديث انس رضي الله عنك مجویات کان النبی صلی الله علیه وسلم رحیم رحیم و مهربان بود رسول الله صلی الله علیه وسلم و کان لا یأتیه احد الا وعده کسی نمیمده قوزه نداشت مگر که بهش بعده میداد اگر در توانش بود و انجز الله إن كان عنده و اگر داشت بیش میداد همون آن در همون آن همون لحظه بیش میداد اگر داشت اگر نداشت بعده میداد فلان روز فلان سهر یا اگر به سمون رسید و اقیمت الصلاة نماز بر وجاءه اعرابی فاخذ بثوبه نماز برپا شده اقامه نمازه. این اعرابی بادیه نشین اومده پیراهن رسول الله داره میکشه تصور بکنی داره پیرهنش میکشه نمیذاره بره ایمان بشه و نماز بکنه پیش نمازشون بشه پیرهن رسول الله اساسا گرفته داره میکشه نماز برپا شده این اومده داره پیرهنش میکشه به خاطر دنیا ولی خب بای محمد رسول الله صلی الله علیه میگه رحیم از وصف رحمت جدا میخواد وصف الرحمه رسول الله صلی هم بکنه نه که بگه الا من پیامبر من فلانم نه فقال انما بقی من حاجتي يسيره ونعرب يقف یکم از اون حاجت نیازم مونده که باید برآورده بکنی و اخاف انسى حبيبي که فراموش بکنم فقام معه حتى فرغ من حاجتي شد مناشدش تا اینکه اون حاجتش برآورده بشه ثم اقبل فصلسه پس اومد نماز و نماز رو به تاخیر انداخت این همه صحابه منتظر نمازی ساده بودن به خاطر برآورده کردن حاجت این اعرابی رسول بلند الله وسلم میشه تا حاجتش برآورده بشه نماز رو به تأخیر میندازه رسول الله چرا چون رحیمه چرا چون شفقت داره مهربانه حریصٌ علیکم و بالمؤمنین رؤوفٌ رحیم و بالمؤمنین رؤوفٌ رحیم این شد این مهربانیشه به اینها سبب میشه که صحابه رسول صلی الله علیه و آله او دوست داشته باشه مثل اون صحابی که عربی و مات در مسجد شروع کرد به ادراک کرده، اصحاب من از جگرش کرده، من کوتکش بزنم بیرونش بندازن واسو اصلا گفتن نه فرمودن رهاش بکنید بزار، کارش تمام بشه میشه اون نجاستو پاک کرد از مسجد بیرون رفت خب بعد از اینکه این حادثه تمام میشه رسول الله ص اصلا بهش توضیح میده که این مسجد جای این چیزا نیست این نجاسته نماز می اینجا در جواب رسول الله صلی الله علیه و آله چی میگه وقتی که میاد میگه بار الله مرا و محمد را ببخش ولی اینها رو نبخش ناراحت شده دلتنگ شده کنتوری اونا نکوهشش کردن زجرش دادن خب این ها هست که سبب شده رسول الله صلی الله علیه و محبوب بشه ما هم باید چنین باشیم از رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم این مهربانی و لطف را یاد بگیریم در روایت حدیث دیگر داریم در صحیح مسلم انس میگه اقیم میت الصلاه و يناجي رسول الله صلی الله علیه و نماز برپا شده بود یک شخصی اومده بود بر رسول الله صحبت میکرد نماز برپا شده بود قامه گفته شده بود میگه فما از یوناجی یونجی تا نما اصحابو وانا اینجا نیمه که اصحاب خوابیدن در این روایت میگه اصحاب خوابیدن حد دقیق صحبت کرد تا جایی که اصحاب به خواب رفتن ثم قام فصلى صلاۃ بسر الله میشه نماز میخونه اینا چی را میرسونه سخاوت این نفس از وقتش میداد سخاوت مندی فقط به بذل مال نیست بخشش مال نیست بلکه به بخشش وقتم هست نعم قال المؤلف رحمه الله حدثنا قبيصة قال حدثنا سفیان عن ابن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال ما سؤال النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فقال لا تیپیسی زحمین حدیث حدیث جابر بن عبد الله رضي الله عنه كمي ما سؤال النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فقال لا هيچ فخرش رضي الله عنه ماشیزی چیزی ازش نمیخوستن و بعد بجنع نه نمیگفتم چیزی از مال دنیا کسی ازش نمیخوست مگر اینکه برآوردهش میکرد یا قول میداد چنانچه در حدیث انس داشت مسلمن این در صورتی که توانش برسه نه توانش نرسه چنانچه از الدین بن عبدالسلام میگه معناه لم يقول لا منع للعطاء ولا لازم من ذلك ان لا يقولها اعتذارا كما فی قوله تعالی لا اجد ما احملكم عليه لا اجد ندارم چیزی که شما را بر حمل بکنم خب اینجا نگفته چون توانش نمیرسیده فرق بین لا اجد ما احملكم ولا احملكم فرق بین این که من نمیتونم شما رحم بکنم چون ندارم و بین این که من بگم شما رو حم نمیکنم به شما نمیدم رسول الله صلی الله علیه و سلم اگر نداشت میگفت نداشت میگفت ندارم و اگر داشت در مقابل اون داشته در در مقابل اون چیزایی که الله بهش داده بود هیچ وقت بخل نمی کرد به اصحاب یارانش میداد از اون مالی که داشت از اون دنیا این نشانه ای جود و سخاوت مندی رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیثی داریم از انس رضی الله که میگه أن رجلا سأل, سأل النبي صلى الله عليه وسلم غنما بين جبلين ان رجلا سال النبي صلى الله عليه وسلم غنما بين جبلين قال لي از غوسف را تقاظا كانت از رسول الله صلى الله عليه وسلم بين دتكو قال لي بين دتكو يعني قال لي زياد در روات اومده در نزد احمد بشاء كثير غسفدان زياد بزاي زياد فأعطاه إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم بشميده يگ گله غوسفند و بز عربي ميده فتقام اون عربی که مسلمان شده بود یا نزد قابش میفقال هی قوم اسلمو ای قوم مسلمان بشید فوالله ان محمد لا يعطي عطاء ما يخاف الفقر یعنی به میده مي مال داشته باشه میده کسی که فقیر نیستن بهش داره میده کوتاهی نمی کنه منده همونطور که در اخلاقش سخی و سخاوتمند بود در مقابل اون مالی که الله بهش داده بود اون دنیایی که در اختیارش گذاشته بود رسول الله صلی الله علیه و بود فقال انس انس رضی ان كان الرجل لا يسلم ما يريد الا الدنيا افراد مسلمان میشدن فقط به خاطر دنیا محض دنیا فما يسلم حتى يكون الاسلام احب اليه من الدنيا وما عليها بعد از اون بعد از ایمانش اون اسلام محبوب ترین چیز نزد اون میشد از دنیا و اون چیزی که در این دنیا محبوب تر میشد اون دنیا براش با ارزش میشد درست ابتدا تمع در اون مال سبب میشد که مسلمان بشه میگی بعدن بعد از اینکه وارد اسلام میشد شیرینی اون اسلام به دلش می و اون اسلامش از هر چی در اون دنیا بوده براش عزیزتر می شده. نمیشه. قال المؤلف رحمه الله حدثنا فروه بن ابي المغراء قال حدثنا علي بن مسهر عنه بن عن حساب بن عروه قال اخبرنا القاسم بن محمد عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال ما رايت امراتين اجود من عائشه واسماء وجودهما مختلف اما عائشه فكانت تجمع الشيء الى الشيء حتى اذا كان اجتمعا عندها قسمت واما اسماء فكانت لا تمسك شيئا لغد 194 اثر اثر عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما في ميقات ما رأيت امراتين اجود من عائشه واسماء ازبيانه زنا سخوات من ترى از عموم و عائشه وخاهرش اسماء نديدم اسم ما مادرشه دختر عبقری شدیدی مادر یکی عبدالله بن زبیر ربیح حدیث وجود هما مختلف خالاش و مادرش یه سخاوت از اینها کسی ندیده و سخاوت مندیشون متفاوت بود وجود هما مختلف اما عائشه فكانت تجمع الشيء الى شيء عایشه ام المؤمنین رضی الله عنها اون مالی که به دستش میرسید جمع میکرد اندوخته می کرد روی هم میگذاشت نیت داشت برای صدق دادن ولی جمعش میکرد که یک جا بده فقر وقتی که جمع بشه ارزش پیدا بکنه تجمع الشيء الى شيء اون مال همچنان جمعش میکرد تا یک جا بده حتی اذا که اجتمع عندها قسمت وقتی که جمعی بشه اون مال بخاطری که بهره بر اون فقیر از اون مال یک جا بهش میداد و اما اسماء اما اسماء مادرش اشر الله علیها فكانت لا تمسك شيئا لغت هیچ وقت مال رو اندوخته نمی کرد برای فردا اون چیزی که داشت میداد اون چیزی که به دستش میرسید میداد اینجا اختلاف سلیقه هست. هر دو تا دارن انفاق میکنن یک اجتهاد کرده به این سبک میرسونه یکی به سبک دیگر. هر دو تا دارن انفاق میکنن عموماً اسماء رضی الله عنها و لقوش در این فعلش رسول الله صلی الله علیه و سلام چنانچه انس میگوید کنا نبی صلی الله علیه و سلم لا یدخر شیئا لغد هیچ وقت رسول الله صلی الله علیه و سلم مالی رو اندوخته برای فردا نمی کرد ام عایشه هم کاری که میکرد مسلمن همسر رسول الله صلی الله علیه و سلم رسول الله صلی الله علیه و سلم متدعبر این کارش بوده و تایید شده هر دو تا سنت هم فعل که اندوخته میکرد، جمعش میکرد، بعد میداد و هم فعله اسما دختر عباکر و صدیق که فعلش مشابه فعل رسول الله صلی علیه و وسلم که اون چیزی که در توانداش و کسبش میکرد یا به دستش میرسید همون روز انفاقش میکرد و برای فردا نمیگذاشت قدرات انسان متفاوته، توانای متفاوته هر کسی به ای که توان داره انفاق میکنه بحنک الله بحمدک سبحان الله محمد و صلی اللہ محمدین و